بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الدروس النحویه کتابی بسیار بسیار مفید توسط چار نویسنده قوی مصری معاصر نوشته شده است به زبانی بسیار ساده به روز و مفید همانطور که استاد سعید افغانی رحمه الله در رابطه با این کتاب فرمودند از اونجایی که کتاب خیلی زود به شهرت جهانی رسید و در بسیاری از مناطق دنیا جزو مناهج درسی شد نیازی نمیبینم در رابطه با کتاب توضیحی بدهم استاد حفنی ناصف محمد دیاب مصطفی تموم و محمد صالح نویسندگان این کتاب بسیار مفید واقعا کاری سخت رو انجام دادن رفتن در لابلای کتب قدیمی و قواعد نابو به درد بخوره در این سطح رو پیدا کردن و جماوری کردن رحمه الله و جمعیان کتاب در چند جلد هست؟ جلد اولش 24 شماره دارد در واقع هر شماره به یک درس هست درس اول شماره یکش تکول کلمات هست به وجود آمدن کلمات پیدایش کلمات من الحروف الهجائیتی تترکب الكلمات از حروف هجایی درست می کلمات این نقطهشون بود خوبی این کتاب این هست که بعدش میاد ایضاح می توضیح میداد، ایضاح حالا ما که این جمله رو خوندیم توضیح شاورده است. ایضاح مصدر هست. ریشش و ضحه هست. به باب افعال که برده شود می شود اوضحه یوضحو ایضاح که در اصل بوده است اوضح. ولی قاعده داریم واو ساکن ما قبل مکسور ما قبل کسره تبدیل بیا می شود پس افضاح شده از ایضاح یعنی واضح گردانیدن توضیح دادن. کل واحد من نا یعرف الحروف الهجائیتا لتی اولها الالف و آخرها الیاو هر از ما می حروف هجائی را که اولین آنها علف است و آخرین یا الف با تا ثا تا یا که بیست و حرف می باشند حروف بر دو حروف مبانی و حروف معانی حروف مبانی همون حروف هجایی اون حروفی هستند که کلمات عرب ازش تشکیل شدند از بیست و هشت ش... حرف دنیایی از کلمات میلیون ها کلمه عربی تشکیل شده است. اما حروف معانی اونی هست که در مقابل اسم و فیل قرار بگیره چون کلمات عربی یا اسمد کلا کلمات یا اسم یا یا حرف اون حرف که در مقابل اسم و فیل قرار بگیر بیش میگن حرف معانی حروف معانی پس كلمات از حروف هجاء يا حروف مباني تشكيل بشوان فمن هذه الحروف فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثاتنا ونستعملها في مخاطباتنا بيجي ازين حروف تشكيل بشوان تمام كلماتك تلفظشون میکنیم در گفتگوی و استفادهشان میکنیم در خطاب کردن مثل مثلو مانند امین اخین اختین اجتهادین نجاحین بله مثل این کلماتی که مثال زد این همشون از قروف هجا تشکیل میشوند. و قد تکونو الکلمتو وگاهی کلمه می باشد یک حرفا واحدا یک حرف می باشد کلمه فی بسم الله معنند کلمه با که یک حرف است از یک حرف, شده. باخدش حرفه حرفه كده یک حرف هجای تشکیل شده با خودش حرفه ولو حرفی که در مقابل اسم و فعل قرار میگیره که از یک حرف هجایی تشکیل شده است کلمه برسنو است اسم فعل حرف به حرف هست که خودش از یک حرف هجا تشکیل شده است. پس اوقا قد تکونو کلمتو حرفا واحدا کلمه یک حرف میباشد مانند با در بسم الله الرحمن الرحیم بایی که روی بسم الله بده حرف جر هست از یک حرف هم تشکیل شده از با تشکیل شده والز وال همضتی معطوف به با هست به خاطر کثر میگیرید. فی علم نشرح لکه صدرک این همز استفهام است ببری؟ آیا؟ علم شررح لکه صدرک؟ آیا سینه، تو را گشاد نگ این همزه حمزه استفهام هست. یک کلمه هست ولی از یک حرف هزار هجا تشکیل شده است و حرفی یعنی وقتی که کلمه حرفی این و عطف به حرف واحدن است پس و تشکیل می شود از دو حرف مثل من و مانند من مانند من و مانند من و یا من وفی فرقی نداره هم من از دو حرف تشکیل شده هم من ولی این اینجا با که اینکه حرف جره منش بگیریم بهتره من هم یک کلمه هست از دو حرف تشکیل شده فرقی نداره و ثلاثت احروفه و از سه حرف تشکیل میشه مانند مثل عنابه و شجره انگور درخت و أربعة و أربعة و حرف تشكيل بشي مثل جادولين و جعفرين مانند جادول و جعفر كأز چار حرف تشكيل شدن و خمسة بس تشكيل بشي أز یك حرف أز دو حرف أز سه حرف و أربعة أز چار حرف و خمسة أز پانج حرف مثل سفار جلن كأين أز پانج هس و و ستة از شیش حرف مثل زعفران، زعفران و سابع این وابوه واب عطف، سابع تن، شش تن، تن منسوب شده، به خاطر این که حرفن خبر تکونو هست، منسوب هست و این وابها و حرف عطف، اینا هم با توجه به معطوف به حرفان هستن، منسوب هستن. اعرابشون شش و مثل استفام مثل کلمه استفام که از هفت حرف تشکیل شده ولا لا تتجاوزو هذا العدد و کلمه از این عدد تجاوز نمیکند یعنی کلمه نداریم که بر بیش از حرف بیش از هفت حرف درست شده باشد معنیش ایده و لا تتجاوزو هذا العدد و کلمه از این عدد تجاوز نمیکنه یعنی کلمه نداریم که از هشت حرف درست شده باشه از بیش از هفت حرف تشکیل شده باشه خب از اون جایی که درس دوم هم مرتبط هست اینو هم توضیح بدیم دو انواع و کلماتی انواع کلمات حالا که گفت کلمه چه هست و از چه تشکیل میشه انواعش رو میگه و تنقسمو الى ثلاثتی انواعین و تقسیم میشود کلمه هی که در تنقسمو هست به کلمه برمیگرده و تنقسمو به ثلاثه انواع و تقسیم می شود کلمه به سه لو یقال له نوع فعل نوعی که به آن فعل گفته می شود مثل كتب و مانند كتب و پس نو که به اون فعل گفته میشه مانند کتاب یکتب و اکتب خود فعل بردانو هست ماضی مزاره امر به خاطری سه مثال آورده کتاب ماضی هست یکتب و مزاره هست اکتب امر هست و نو این یقالو له اسمون و نو این که بهش اسم گفته میشه. مثل محمد و عصفور و تفاحتین مانند محمد و عصفور و تفاحه. چرا اینجا گفته مثل محمد چون مضاف اله محمد و دائره يقال له حرف و که به آن حرف گفته میشه مثل حل و فی و هل فی و بله با استقراء و تتبع در زبان عرب متوجه میشیم که کلمه یا به تنهایی معنا دارد یا معنا ندارد اگر به تنهایی معنا داشته باشد یا همراه با زمان هست یا نیست اگر همراه با زمان باشه فعل هست دلالت بر زمان بکنه، مانند خورد دلالت بر این بکنه که در گذشته خورد، فردا میخورد دلالت بر این میکنه که فردا آینده میخورد. پس خورد و میخورد فعل هستند. اگر تنهایی معنا داشت و دلالت بر زمان نکرد، اسم هست. مانند خودکار، مانند محمد، مانند گنجش، مانند سیب و نوع دیگه ای که به تنهایی معنا ندارد، این اینکه ترکیب شد در جمله. که بشت حرف این توضیح لا تخرجو جميع الکلمات التي تترکبو من الحروف الهجائیت ان ثلاثت انواع خارج نمی شواند. تمام کلماتی که از حروف هجایی تشکیل می شوند از سنو از این سنو خارج نیستند یا اسمند یا فعلا یا حرف یک نوع یسم ما فیلند نوعی که بهش فعل گفته میشه. دو نو و نو اند یوسما اسم نو که اسم نامیده می شود و نو اون یوسما حرف نو ای که حرف نامیده می شود. فال یک ابتدا فعل رو توضیح دهد. فال فعل مثل کتاب و یکتب و اکتوب. فال مانند ده کتاب مازیه است، یکتب و مزاره است، اکتوب آمر است. مانند ده دحرجه یو و دحرج دحرجه اونا سلاسی بودند، دحرجه رباایی است، رباایی مجرد. دحرجه غلطاند یا دحرج و مزارش هست دحرج عمرش باند انطلق و انطلق این هم سلاسی مزید هست پس فیل یا سلاسیست یا ربایی. هر یکی از سلاسی و ربایی یا مجرد هستند یا مزید که اینا بحسون در صرف هست استخرجه یا استخرج و استخرج این هم فیل سلاسی مزید هست مازی و مزارع. و غیر از ذلك من الالفاظ الذي من الالفاظ التي تدل على حصول شيء و زبده و بغیر از این امثله الفاظی که دلالت بر حاصل شدن کاری میکند و دلالت بر زمان میکند پس فعل آن است که دلالت بر کردن و شدن کاری میکند و همراه با زمان باشد و همراه ما چه باشد؟ زمان گذشته حال یا عرده علی خورد، علی دارد می علی فردا می خورد این فعل بود بله و الاسم اسم مثل محمد و عصفور و طفاحت و ارض و سماء و شمس و قمر مانند محمد عصفور گنجشک تفاح السيب، أرض، زمين، سماء، آسمان، وشمس، خورشيد وقمار، مح وغير ذلك من الألفاظ التي ننادي بها الأشخاصة وجوز أزين مثالها، أن ألفاظ كي بوسيليشن أشخاص صدا بزليم أو نسمي بها الأشياء يا بوسيليشن أشيارنا مغزاري مكريم فمن ذلك الأسماء، فمن ذلك أسماء الناس وأسماء الجبال والأنهار والبلاد از همین هستند اسمهای مردم، اسمهای کوهها، اسمهای رودخان نهرها و سرزمینها و کل ما یدلو علی حیوان او نبات او جماد و هر اسم دیگی که دلالت بر حیوان یا نبات یا جماد مکنند سه والحرفو نوی سه وم حرف هست مثل حل وفی ولم ومن و من و ثمه مثل اين مثالها وغيرو ذلك من الالفاظ التي وجوز از اين مثالها اون الفاظي كي لا يظهر معناها إلا مع غيرها كي معناه شون آشكار نيست مگر با تركيب شدنه با كلمات ديگر معنان ده من وإله من وإله بتنهاي معنا ندارد اما زماني كي در جملة من معناه ابتدابي ده وإله معناه انتها. من زاهدان الی طهران از زاهدان تا تهران من معنای ابتدا داد الی معنای انتها ولی در جمله پس فعل است که به تنهایی معنا داشت دلالت بر حاصل شدن کاری کرد و دلالت بر زبان اسم دلالت بر معنا به تنهایی میکرد اما همراه با زبان نبود اون چیزی بود که باش اشخاص رو صدا می یا اشیار رو نمگذاریم می و حرف مانند حل و فی و اله کلمه بود که معنایش همراه با کلمات دیگر ظاهر می شود تا اینجای کار درس اول و دوم کافی است امیدوارم این درس های نهوی به بانند سوره فاتحه حفظشون و و بفهمیم تا لحظه در انتها بفهمیم نحو بحثی است که اگر هر جلسه بحثای ما قبلش مرور نشند زیاد نمیتواند کارایی داشته باشد موفق و پیروز باشید